درس پنجم خواندن نظامی گنجوی نظامی گنجوی تولد 535 هجری قمری وفات 608 هجری قمری شاعر افسانه سرای آذربایجان است وی در قرن ششم هجری در شهر گنجمی زیسته و های خود را به زبان فارسی سروده است مصنوی شعری است که هر دو مصرع آن یک قافیه دارد از معروفترین های او میتوان خسرو و شیرین را نام برد در این مصنوی عشق پادشاه ایران و شاهزاده‌ی ای از ارمنستان مطرح است که در جوانی عاشق یکدیگر میشوند شیرین به خاطر عشق خسرو تارک دنیا میشود و در قصری دوردست گوشه نشین میشود ابتدا اطرافیان شاه مخالف ازدواج او با شیرین بودند ولی سرانجام آن دو عاشق به یکدیگر میرسند مصنوی خسرو و شیرین پایان غمانگیزی دارد داستان با مرگ خسرو به دست پسرش و خودکشی شیرین در کنار تابوت محشوقش به پایان می رسد. فارسیه آمیانه کتابی زویا پیرزاد تعمه گسه خرمالو زویا پیرزاد زاده 1952 در آبادان رمان نویس مشهور ارمنی تبار است. مروفترین رمان پیرزاد چراقها را من خاموش میکنم، چندین بار در ایران تجدید چاپ و به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است از جمله دیگر آثار مشهور او مثل همه عصرها یک روز مانده به عید پاک و عادت می‌کنیم را می‌توان نام برد آثار پیرزاد به خاطر شخصیت پردازی پیچیده و نیز مهارت در نمایش احساسات زد و نقیز زن مدرن ایرانی در خور توجه است علی هست لیلا دستمال نمدار را کشید روی تلفن نخیر شما شما خواهرش هستین لیلا دستمال نمدار را کشید دو طرف تلفن نخیر شما آن طرف سیم جواب نداد لیلا دستمال رو توی دستش مچاله کرد شما آن طرف سیم گوشی را گذاشت لیلا هم گوشی را گذاشت دستمال نمدار را کشید روی گوشی به تلفن نگاه کرد انگشتش را کرد توی دستمال و از صفر شماره شروع کرد به تمیز کردن سوراخ شماره ها. به یک که رسید زد زیر گریه. رویا جبه دستمال کاغذی را از این طرف پس آشپسخانه سوران طرف لیلا که روبروش نشسته بود. لیلا با دستمال کاغذی مچاله هر دو چشمش را خشک کرد. دماغش را بالا کشید و گفت دستمال دارم. رویا دست زیر چانه به لیلا نگاه می کرد. اینجور که تو شروع کردی یه جبه هم کمه لیلا از نو زد زیر گریه رویا پاش و چای ریخت یک فنجان گذاشت جلوی لیلا یک فنجان جلوی خودش نشست با گریه که کار درست نمیشه لیلا وسط گریه گفت میگی چی کار کنم ایران را بهتر بشناسیم ستون دو ستون یک معبد یا کاخ باستانی در روستای خره در شمال شرقی شهرستان محلات تأثیر معماری یونان قدیم در شکل این دو ستون پیداست در دوره قبل از اسلام به خصوص در دوره حخامنشی، رقابت شدیدی بین ایران زمین و یونان وجود داشت این رقابت با وجود اینکه بیشتر باعث جنگ میشد ولی باعث تبادل فرهنگی نیز میشد